آواز خدا این نوالیاتی رو که در باب حجید خبرت هم از شده بشیم چون فرائد مختلفه فراغانی داره حدیث شماره 20 در این تکار جامال احادیث به حسب شماره ایشون از رجال کشتین هم از حضر محمد ابن قودبی ایشون پدر صاحب کامور زیاراتی که پیلت پیسرش با قرغاز بزرگوار را مشهور و جهبه بنده اون درجه نیستم اون اجمالا توسید آقا حدث هنی سهدون الله آقا محمد ابن حسین خطا این همه جه دو اینجا بستن ان محمد ابن سنا این مهل ان محفظل نامر در افترام در ما این دو بزرگوار از خط قروم فرد فردشون اینه که مفضل این هنر بزرگت شهره و معلومت شهره و معصص خطپولو میشه تقریبا اصلا بیشتر جاوره نیدی دیشیدی و من که از این خطپولو یا این هم که با اونان خطپولو نام ها این ساله واقعه هم اصلا آهده که انشاءالله بحث خاصی را زبین مکرم محمد از سمن هم بزرگترین مردج و ناشره کار خطه ها دردار خوزن افکار مثل مخوضای محمد و محمد از سمن بزرگترین معلق و کسی در که در خطه غلق کرده و روش هم خطه غلقی حساب میکنه محمد از سمن پس یکی از بزرگترین شهرهای خط قلوبه که مقزل محمد باشه یکی از مهمترین ناشنه بار خط که محمد ابن سلام باشه قاضی الله یوم من دفل علیه خیطوب من مختار ای که مهمم نیستفده کردن به آیت هم که الله یا وجل یعویل که بارزه خط آتالا در خبار برس که میاد اون ممیزات خط خود رو بریشید که عرض میکنید ایش که ایش ترلیل و زبان را که اختلاعاً منشه کنید به خط باطنی باطنگوی باطنیه گفته دوشید فرقا لفت فیض جعلنیه ما آزای اختلاع بزردی به نشید افکن چون در کوفه بوده در محصود کوفه خوکه بیاست می آن در حدیث دو با آنسا در نحوی میکردن و اختلاف درشد آل العیل اختلاف یا خیلی فرقان دردن خیلی اونین العیل صوفی حلقه حلقه بکوته حلقه ای در داره که شیستد نفر یا نفر اون و شامیه سمیه تو شیستد نفر یا نوستن نفر کلا رو از اون ما رو زانه هم افتاده باشه فرکار دارم من نظرگ شخص ما دارم در شخص زاهرم باید دینی باشه چیزی به افتاده باشه احتمال میدم این آره ساعت دوسته ساعت این دیسته که من روه چون دیست دوسته یکی اتیار کنشم داره و اکاد و عشق فی اختلافه از وقتی فی گانی میاد این فی در اینجا بلنی لامه لی اختلافه اکاد و عشق لی از جرعه از مفضله دامن سیدیویتی علامات تستری و علیه نفسی و اطمئن و قلبی چون مفضل از وزوران شد برونده و یکی از خواهی احساسیش میگه من با مراجعه بیشان این حال میشه ابو عبد الله علیه السلام اجال برو کرد حضرت یا خیض انناس اوله او علینا الله به علی الله هفتر به علیه اننا انی کنه لا هم زیبا بود مراد ناس در روار مراد عبدالله سنت در حالا مجموعه کسانی که در پوزه میگوزن شیعه هست این روزه این در واقع شیعه واقعی و این این و احد سا احد حالا حتی یک حالا غیر من که میگم یکی که اینجاوی جا, جا شکره که انهم دایت ربون از حدیثنا و به خبتنا ما الله، و انمایت از دنیا این و کلانی یوهب و انیاد آره اسد همه میخوان دنبال ریاست رفت هر کسی میخواد که بشه معلومه که عبد الیار سو الا الله و ما من عبد الیار و انا سو خوب حالا اینا مقدمه تو درس هستم این مطلب رو در بحث تعارض عادتن در اونجا متعارض میشید حالا اینجا به لن مراجعه بشه این حدیث در به تشیص قدرت یه مختصری متنش داشت مختصری که توزیعه شده, شده توضیح بیشتر عرض شد فعل نعرف ادا با در و ام اداره من اصحاب مثلا تو اصحاب راهن سوال و, و زوارته این هم خیلی عجیبه که این فیض میگه من تو حلوه های شییه در کوفه میشینم میشیم چ هم و ظراه نمی نه <تصفح> هم غیب بود این بشون دیده که میشان از خط مقابل ما از که در کوفه در درمون زمان ما معساده این اطلا بر دست تو خط خط اعتدارار خط کلو ظراره و خط ارتظار نماینده اصلی خط ابتدار ظراارت زراره و محمد المصرم و عبد بسیر و برایی اینا همه بزرگان حق اعتدار هست در مقابل مثل این مفرداده و عمر نشین شنگ و ایما و یادر بن نیزیر که اینا بزرگان حق قلوب و خود محمد المصرم فرصال فرصال ها نا هم فرحال زراره این مطلب من هم اون بودن بگی که امه علیه و مصرم اثبات کردن رجوع به مثل زراره در حدیث هستند سندش. بد نیست جمالای محمد سلام اگر مفضل در قبولتین خیلی بد نیست اما مشکل سر اون دلالتیش ربطش به باب حجب خبر واحده یعنی اشکال همین اشکال قبولیست که این افراد بزرگواری و ما الان چیز نداریم این, این قدر روایاتی که نستیم مثل مستقیم از زورا را از امام نداریم باز در رجال مغموم کشی حدثانی محمد ابن قولبه کنان اسم بودم حدثانی صدق عبدالله از احمل اشعری احمل احمل ابن محمد حدیال دیوزم اسمش بودو شد از بزرگان اسم امیونس ابن پیشان جایی رو در عبدالله فقال امالکن من مخزن به کسی که بگو مسترانه پس در این بونه که بود اتنان پیدا بکنین ما یه هم نرکن من از حال بصری یا بصری حال سبن مغیره جز این جده های اصابه از اما مرد بزرگواری در میاد بصر های ما یکی از چهره بسیار بزرگ این حال سبن است. این هم راجعه به پیشان این سند حدیث هم خوبه حدیث شماره 22 همه رو باز از ابن قولوه یه پدر از سهل محمد الله همه محمد این ایسا آزفا محمد اگر نسخ خراب نباشه اگر نسخ خراب نباشه آزفا باید محمد این ایسا قوید باشه اگر نسخ خراب احتمال هم داره که احمد ابن محمد ابن ایسا باشه احمد ابن محمد شخصده باشه احتمال داره الان یاره من فقط اجمالا عرض بکنم این کتابی که الان به نام کتاب کشی به ما رسیده کتابی ضعیف، اینطور که مرمان نجاشی داره لبو کتاب رجال کبیرون، الان، و کسی را در هم کسی اگر اولا که نجاشی گفته زاده مرادش قرارت معنویه یعنی قلق داره معناش باشه. و که این نسخهی که ما داریم هم عقلات لفظی داره معنوی داره یعنی معناش باشه. هم عقلات لفظی داره هم تصحیف داره کلمات جاوجا شده هم به اصطلاح سخت داره خیلی به همه خیلی نصفی موجود ما بیش از اون مقداری که نجاشی فرموده اون مقداری که نجاشی فرموده چون مثلا نجاشی هم دارد کنو به این که مادرم را در ذهن من 17 مورد قلط های رو گفته این گیا و دفعه ابا رو کشی نمی‌کنه، اما نشون مختصرش رو گفته قلط های کشی قلط های هم بیش از اون مقداره انصافا خیلی کتاب به هم ریخه و به هم پاشیه هست اونی که ما الان داریم فقط به اقلات معنوی نیست اقلات همین حدیث بعدی خواهد آمد بعد دین شماره شماره 23 در کتاب کشی اینطوره حضرت به علی ابن محمد و قومی این علی ابن محمد و قسیدیه تسکیب شده به علی ابن محمد و قومی و توی مشاهد کلینی نجاشی کشی مذرمون علی ابن محمد قومی هم داریم مجبور هم هست میشه میشون. اما این اینجا قطعیدیه اینجا مراد قومی نیست درسته ما ابن محمد قومی هم که مشاهده ایشون داریم بکر اینجا علی ابن محمد قطعیدی مراده نه علی قومی از, از, از اینجا دلت گلیتار در این کتاب تجلی زیاده یعنی صافت تنبیرن میشه کتاب رو محدوم و فائده کرده چون خیلی زیاده یعنی انسان در حال مثل علم اجمالی که در شوقه کسیف کسیف از بسی احتمال خلط و تحریف و تحسیف و زیاده و نحیصه جا به جایی در کتاب هست دیگه تقریبا انسان مثلا خدا نکرده احتمال بوده که اصلا در همین حدیث شماره 26 که بعد میاد و روی الحبیبسی حماد بن عبیدالله بن عسید مروی گفته نشاستند داوود بن قاسم نواجه جعفل این اینجوری بوده عن داوود بن قاسم ابي قال اتخل... چقدر داوود بن داوود بن قال از خمس کتاب حضرت ان نوابجع اثر غلطه ان داوود قاسم ابي این ابي جعفر جعفر. جعفر هاشم جعفري ان نوابجع داره جعفری مثلا یاد جای کرد کلا ابا کرده که کلا غلطه ابا هاشم که اینجاشون باید مجبور باشه تاریخ هاشون مطلب منطقش این چه لازم اکتفا به هم کاشیده است یعنی چقدر به هم ریخته شده این کتابی شده که الان موجوده و 190 سابقا هم من توضیح دادم مشکل کار این بوده که مصادر اولیه ما یا در کوفه بوده یا در بغداد بوده یا مثلا در همان زمان در مکتب قم بوده این یک طرف خود مرحوم کشی با بزرگان اصحاب تماس نداشته یک لیستی از مشایخ ایشان هست حدود 51 52 نفر مشایخ کشی هستند شاید یکی دو نفر دو سه نفرشون رو مثلا سرشون به ترشون بیاردون مثل مثلا ایاشی شان چون مثلا پنشیس نفرشون توصیح شده براشن بقیهشون به کل مجبولن و بیشتر همون مال کشف و مرد نمیدونم همون طرف های خودشن طرف های سمرهند پیدی اطراف سمرهند ایشان دور بوده از حوزه های علمیه یک مقدار ایشون به نشابور آمده علیه محمد خود رو در کرده و به قوم آمده پسیل محمد ابن غوله به یکی دو افردیه قومی که اونا هم مجبولند به محمد خوب غوله به بغداد و به کوفه و اینها که مرکز در حدیث شیعه بوده متاسفانهشون مراجعه نکرده لذایشون در یک منطقه در بوده مسادری که در اختیاریشان قرار گرفته مسادر دقیقی نیست درست نیست خودیشون هم ظاهرن خیلی حدیث شناس و نداشه. خالیت تساهل نبوده مساعده میم در اختیارش شده که اصولا اصحاب ما اسم اون رو نبودن مثلا نجاشی اون جبه این احمد فاریابی که این همون طریب فاریاب ما در اون مناطره اشون کتاب به نام مفاق بساته به کوفه داره که اصلا نجاشی اسمم نبوده حالا از اجل روزه دار حتی مرموم آشان بزرگم در ازداری اسم کتاب نبوده نایی دارم نیکی نایی این در لابلای خشی در زدی یک روایت آراموزه میگه نقل تا حاضرات این کتاب مقاق رای را بست آرگوپل را احمد جردی و محمد یعنی میگه اینقدر این مسادر گمنامه که هر تا میسی مجموعه آفزای تهرانی هم اسم این کتاب به هر حال این کتاب خیلی قلط قلوب داره, داره ها. به جهات مختلفه و یک نقطه رو در نظر بگیرین که یکی از مشکلات ما دو تفکر مختلف بین نجاشی و شیفه نجاشی چون مثل بختب بغدادی ها قائل به حجید خبر نبوده دنبال شواهر بوده شیف قائل به حجید خبره مثلا در همین کتاب کشی نجاشی بگیره نمو کتاب رجال خبیران الا انهو کسی رو لقلات شیف بگیره نمو کتاب رجال خبیران کسی رو لقلات همینی چه کسی رو اون آقا چرا شیف افته کسی رو خب راست مسالی در های که از دیگه نیست از دیگه دیگه این هست راست این مطلب و که نعرض کردم اگر تحلیل تاریخی ما تقریبا جوری با مسادر می که حالت دست بسته نسبه که نیستیم میتونیم از بالا سر تاریخیش رو ببینیم یعنی برای ما واضحه که مسادر در کوفه وقت دادقوم بوده پس که نشابور بوده این چی دوری این مسادر صحیحی یا دست این آقای کشی رسیده این مسادری که دست ایشان رسیده معزمش نسخش روشن نیست مقبوضه حالا خود کتاب ایشان هم بعدها از کشف به بغداد آمده زمان نجاشی خود این کتاب به بغداد آمده ترسط پسر عیاشی بنزدن بیرخان محمد مصر ترسط پسر ایشان ظاهرم باز اضافه بعد اینکه که هم خوب نبوده خود نسخه غلط قلوب داشته این دو تا سوم که شیخ در اوافر عمر وارگشون در وقت نجم بودن دیگه کاملا واضحه که ایشون بیه ها بودن از بعد از خروج از بردار دیگه نشاط علمی رو نداشن حدودش شاید مثلا چیدی بوده چارپن سال بعد از خروجشون از بردار در نظر این کتاب رو گرفتن تلخیصی کردن. که خود مبنای تأسیس شیخ بر ما واضح نیست. اصلا شیخ با انتخاب چیکار کرده بر ما واضح نیست. چون شیخ مبنای حجیت تعبدی خبر را قبول کرده، احتمالاً با همون غلط‌فلوچیش چون حجت می‌دونن، دولت حجت تعبدی، آمد با همون غلط‌فلوچیش می می‌دونن. با همون غلط‌فلوچیش باعث أشرف می‌اده. هر حال کار دربی که این کتاب شده یک تلخیصی از که خود اون تلخیص شیخ هم واضح نیست. چند تا مشکل پیدا کرد این مشکلات عدیده ای که پیدا کرد این منشأ شده که کتاب به این صورت دیگر اثر کردن اون مطلبی که نظرش کرده اخلاقات کثیره اغلاظ داره تصیف داره تحریف داره نقیص داره زیادی داره غلط‌های خیلی واضح داره مثلا این داره جزری اطبیاش هم بوده مثلا کلا عوض کرده خیلی مجموعه اموری که داخل کتاب تشیه ما موجود ما پیدا شده بود فوق العاده اون رو خراب کرده از کردم چند بار عرض کردم در میانه اون که من خبر دارم من در کتابخانه صدر رجالی خیلی قدیمیه خیلی مراجعه نکردم این صفحه تو اون یکی که من خبر در کتابخانه صدر رجالی معلومه کوستری در قانون صدر رجالی اونجایی که من میگم اولین کسیه که البته خودش متفکر شده اباظه را به و و تصحیح کرده اولین کسی که مثلا آلوخویی منجبر تشخیص نداره آموز قاموس در آمده بود در انجام آلوخویی در رجالشون ناظر به هر طور قاموسن اسمی نداره. لکه مرادشون قاموسه. کتاب قاموس قبل از کتاب مرحوم استاد عمر قاموس رجالی محتواست. مرحوم آلوخویی این کارو نکرد نه خیلی این کارا, این کارا مرحوم توصی قبل ازش انجام داده. یکی از کارهای خیلی مهم قاموس رجالی اینه. وقتی که عوازه کشتی میگه این تحریف سواب رو کذا این زیادیه این نویزه از این قلطه این این رو من جای دیگه اول اولین کسی که بیزه حالا شاید بعد از منون توسترین کتاب دیگه آنی در جا نبشه من نایدم اطلاع کامل ندارم علایه در کتاب مرحوم توستری این کار رو کرده اما عرض کردن چند بار عرض کردن یک کامل نیست همه هن نیست که از اول کتاب مقید بشه کتاب رو درست کرد بعضی ها به نظر من افراد کرده چون نگرشی بوده که این کتاب خیلی خلیف بروچه به نظرم هم بردی مثلا گفته سواب رو کذا نه هم معلوم نیست سوابی که ایشون بردان سواب کشه برما کتاب الان مشکلات داره حتی به لحاظه سمن مثلا خیلی از روازی آدم هست به اسم جبریل و نحمد فاریابی به جبریل و فاریابی خوا ما توضیح داریم جبریل و نحمده کاریاوی استاد کشی نیست اول سهر آمرده همه استاد کشی نیست الان در افرادی که شهر کشی نیستن جبریل و نحمده روزه مشاهد رو میشن اینه دو قلعه کتابه اون جایی که جبریل و نحمده کاریاوی هست یا توش باید باشه وجه تو به خط جبری چون اون کتاب جبری به خطش پیشیشان بوده یا باز توش محمد رو مسعود باشه عیاشی. چون استاد علیاشی هست این روما با میگم الان نوشتن جبریل نحمد فاریادی در, در, در مشارف این مشارق کسی بشید خب این خلال که کتاب چقدر زیاده چون ما درخواست ها سهر دران داریم در کتاب کسی اول جبریل نحمد تمام اینا غیر سریعه تمام یا باید توش این گی باشه وجب به خط جبری یا باید توش باشه علیاشی انجبری چیزی جلوی نعملی پایوری در نمی‌کرده. نکرده. می‌کنه. بله نسخه خطی ایشان در اختیار داشت و هر حال من یک مقدار روسمان که بحث اصول بود میدونم با علم از بحث خارج شدن. هم چیز دیگری بود اون اینکه واقعا اگر به فکر بیفتن در این حوزه های یا فقه، یا مشهد یا نظر فراموز یک کس یا اصفهان یک گروه تشکیل بشه کتاب تصحیح بشه و درست بشه. و شرح داده بشه و توضیح داده بشه اوحام هاش کن شما خیلی خرابانه یعنی به حدیث که یه کتاب رو خود رجال شیف مشدوشی داره رجال شیف, رجال شیف مداشت خرابی داره اما قابل قیاس با حرابی کتاب رجال کشی نیست خود مقدار من حالا اگه صحبت شد حرابی, حرابی کتاب رو مرز اما با حرابی کتاب کشی قابل قیاس نیست و این این رو بدونیم ما در مذهب یا در بوضه های علمی دینی خود رو اگر اعتماد در یک مسئله ذریع بکنیم اصلا اساسی رو مذهب میاد که مثلا مذهبی که دینی میخواد با این کتاب های اونطور قلب خلود احساس و کار شده بکنه حدیث رو بسید بکنه خب این خیلی اشکال کلی به اصل مذهب کاری میشه در بسید بکنیم یکی از حدف های ما در بحث که، بحثای خوبذربی رو جنبه علمی رو شدیم نه جنبه عوامی و جنبه مثلا کتاب های مثلا مادر بولور یا مادر شد پدر بولور یا <تصفيق> جای نمی رسونه این کتاب کشیه موجود یه چیزی شبیه مثلا نسخه خطیقی پیش پدر بولوری توی دیر یه چیزی شبیه اون درماره از بس قرار کرد داره و تأثیر هم کرده یعنی منشه که بشه مثلا بعض از افراد توسیق بشن اصلا الان عده از مشارف کشی رو که مالی میشنستیم فقط شیف متعرضشون شده نجاشی هم نداره احتمال میدیم این تو نسخه اصلی کشی بوده شیف هم گرفته ما اطلاعات همون منحصره به شیفیم لذا ممکنه همونها هم محل خدشه قرار بگیره چون اصل معلومات شیف تما این که ما در مباردی اثبات کردیم شیخ در رجال یه داره یعنی مطالبی رویشون میگه کسی مثلا میگه این با مثلا رو کنم داره اما نجاشی نگفته سماع واقفیست یا مثلا همین شهر برسوی که روایت عمره نهنزر میکنه قبلش که اونم گفته شده که واقفیست نجاشی و به رو ما احتمال دادیم یه مقدار کل بلوطهایی که در رجال شیفن پیدا شده از چیزم ایزار کشی باشه چون واضح کامران که با نظر احترام بعضی که پیدا کردید، با نظر احترام به کتاب کشی نگاه میکرده و از کردیم مسادر کار کشی از با خوب هم داره فصل که شاگل این مرحومه عیاشی فوق الاله دقیقه انصافه زحمت از زیاد کشیده قب آمده برداد رفته کوفه رفته که های بیگه رفته اصحاب رو دیگه کار کرده نسخه شناسی کرده خودش هم واقعا زندگی تو در راه حدیث رو درشته خودش هم واقعی سنی هم بوده و شبه خنده رو ترکیمواریشون سنی هم بوده بعد پشه یه پول زیادی از پدرش ارته همه رو صاحب کتاب کتابخانه مهمی در اونجا در کش درس میکنه در سناوعدین ها که یکی از مصادر مهم مرویه کشی هم همین ایشان و کتابی هم به نام معرفت النابوی داشته که فعلا به خاطر ظاهر در اختیار ما نیست ولی من یک احتمال عرض کردن اینا واضی به منظوره مشکار میشه فعلا بازی بحث میشن که شاید این کتاب کشی موجود در حد از کتاب معرفت النابوین عیاشی است یک احتمالی که من دارم و ندیدن کسی هم تارمونت فتن شده باشه که این کتاب کشیه موجود جز ای از کتاب کشیه است و جز کتاب کشی اسمش رجال بوده کتاب رجال اما کتاب مرحومه معرف نج... معرفتون ناقلی به هر حال من این مقدمات این روز بد خارج شدیم به خاطر اینکه که واقعا این کتاب دو اصول خمسه رجالی اشتیه این کتاب کشیه بی اصول خمسه رجالی اص فهرست شیف و نجوشی در جال به استلام چاپ سه تا ایکن کشی که ایک من اینا رو رقصه خسیر رجالی میگه انصافاً اینا مشکل داره رجال شیخ مشکل داره فهرست شیف و فهرست نجوشی هر دو رجال نیستن فهرست داره رجال کشی هم انصافاً مشکل داره تصدیف این رجال از من به لحاظ تاریخی و استنادش به من مشکل داره همه مطالب خیلی درگیره حالا چی روزی می نوسته در رخته ما نمیفهمه مثلا کتاب که چی رو چه ترتیز کرده مستریتشو واقعیت تاریخیشو خوب میشناسه اما خود کتاب خیلی درگیره باعث کتابی اندازهقدر داریم دقیقاً باعث کتابی که خود نگار داریم داره اشتباه داره نگار اما دیدگاه هم داره و بعد واقعا مطلع است اصلا مطلع است این کتابه رجا ابن قذای به لحاظ ثبوت تاریخش مشکل داره خود صوط کتاب مشکلی داره اما من کتاب خیلی عادلی بهشه کتاب کشید درقی تو با هم اکثرما. اون کتاب صعوط واضحه اما خود مل کتاب با قطع نظر از مؤلف خیلی خرابی داره، خیلی زیاد. یکی از کارایی من فکر میکنم خیلی برای حوزه ما مفید باشه و ضروری باشه همینه. یکی از کارهای بسیار مهمه. این بچنن یک ای لجنه ای که تخصیصم داشته باشن قشنگ این کتاب رو تحریف و تنصیب تحریف و تحریف و تنصیب بکنن سختهاش، غلط هاش اشتباهاتش امسا همون نصدر تمامیه چاپ بکنن در خاشیه توضیحاتی داده بشه و این کتاب از این حالت ترغلطی در بیاد خیلی وجهش ترابه به هر حال این مقدمه رو عرف کردیم چون واقعا یک اتیاج سری کاروان بی حدیث شماره 22 که ساغهر هم خوندیم این حدیث خوندیم از کتاب واس باز هم محمد بن قودن و محمد بن عیسا اصل اینکه ما احتمال می احمد محمد بن یحیی از بعضی‌ها از محمد بن ایسا یقینی هم نقل میکنه اینکه نقل میکنه اما شواهد بیشتر به اصلا مثلا احمد بن الولید این احمد بن الولی احتمالا محمد بن الولی باشه اون سره اگر باشه احمد بن الولی فعلا نمیشن سیم. چه اسم نده و در کتاب کتابی که به نام اختصاص که مفی معروفه ببینیم احمد بن محمد بن عیسا احمد بن الولی اینجا به محمد بن عیسا احمد داره این به قواعد بهتر بکن و احمد بن الولی غلط هسته اون که در هر دو نسخه هست مشکل احمد بن الولی. ان مس علی بن این سند خیلی نیست به خاطر اون احمد بن غریب که درش هست شقتی و دستا سرهولت می‌کنه کل وقته حالا ایک ام اختلاف بین کشی و اختصاص داشت که چون حدیث رو خوندیم تکرار که این حدیث از الیبن مسیب نقل کرده که من راهم دور است و از کی این را هم ببرده این راستان ببرده فمن من آخده ما عالم دینه قال من زکریا ابن آدم القومی المعمون على الدین و الدنیا قال الیبن مسیب فرام من سرخ بله قدم تو على زکریا ابن آدم فساعد و و تو و هم مختش تو ادهیم این مال علم درست خیلی داغی نیستند، فقط معلوم شده خواندن که عربی آن عصیل، لکن ساکن حمدان بوده و سبب آن این شوقی باید شود از زلزله که یا که حمدان با با و با تو که با مرگیه نیم چونی از اون بیا خواهم از علی زکریا آدم بگیر، علمونه علم دین در دنیا اینم ارجای امام به مثل زکریا نا آدم از که انصافت ما مجموعی روایات معتبر را داره که این داره اما روایات معتبر که اجار به افراد داده شده داریم. مشکلی که در این روایات هست غالبا این نقطه اصلی که مثلا اون کورایی که امام انتباق دادن برای این افراد ذکر نشده مثلا علیه که باها زوره اینجا داره از مهمون عرددین و دنیا نقطه شیده و کانه اندهو وجهی هم مرزی یا محمد ابن مسلم دقیق میکنه این این افراد چه کبرایی بر اونها منترض میشه توی روایات ما نیارده این یکی دو یه مطلبی رو من سالاً ارز کردم باز هم تکرار میکنم این از به اصطلاح اون طاقه اویا اگه یاد مبارکون باشید این با، طاقه اولا ربایت بود چیزی که عنوان سقه بود فه اینهو سقه کل عنوان سقه و مثل این ربایت المعمون علا دین و دنیا یا این ربایتی که الان گذشت از ارجاع برد و عزیم حسنی فما برد بعد سه تا حدیث ایشون نرد میکنه از شماله 23, 24, 25 این دو ما در سابق خونگی هسته حدیثی حالا من چون از کتاب کشیه استفاده کردم از کتاب کشفی نشه حدثنی علی بن محمد القومی. این که قائله علی درسته هرچند این ساق خیلی قرعه وجود داره حدثنی فضل معشازا حدثنی عبدالعزیزه بن معتدی و کان خیر القمی رأی و کان وکیل از رضا علیه السلام و خاصه در قال سهرجوره تا قبول تو اینو القا في كل وقت همه من عاقل معالمدینه قال خود عینش نداره ما قالو احتمال میدم احتمال میدم این سوال جواب باشه که حضرت در مدینه بوده چونم سوال این بوده که من شلون تا مدینه بیام از بغداد ما فرالا این آقا قم نیست این مثل ندرمان بغدادی است امامزاد در مدینه بعدم در خراسان مرفی فکر نمی‌کنم که به امام مثلا به از قبر تا بغداد تا بغداد تا از اونها بشنوی فکر میکنن مثلا گاهی میواز مدینه برای حجی برای عمقهی موفق نمیشده به خاطر شرایط تنیه اینها خدمت امام برسته امام میتونم تو از بغداد از اینسته بغداد ما ساله زاره با دیمتا باشه الا انصافن به قومی بودن و اون آقام بغدادی بودن و حضرت رزان که مثلا در مرد بودن را به کلی خارجی ندارن یعنی احساس بریدگی در صدر انسان میکنه چیزی صاف از نمیاره اساساً این روایت رو واسه مرحوم کشی داره محمد بن مسعود قال در محمد بن نُخیر ایشون از علمای کشه غیر از چیه که طوسی ایشون توسعه کرده راهی بیشان نداری خود من احتمال از کشی گرفت قال در محمد بن عیسی ایشون محمد بن عیسی بن امدی که درست هم از اینجا حدست هم یه محتدی و دار اینجا قال محمد بن نوسی قال محمد بن عیسی وجد طول حسن نهلی این توی ای شاش شده وجد طول حسن نهلی ابن یخیی به زالته عیزه این هم با جزء فرات های و حد دست حسن ابن علی ابن یخیی به زالته این حد شده وجد تو. و شد. این کار مشکلیه کتاب خیلی خرابی های زیادی داره انصافاً یک کاری بشه روی این کتاب خیلی ضروریه نه ضروری ها رو بحث رجالی مثلا برای مذهب ضروریه ما بیم یک مقدار مسائل رجالی و حدیثی رو روی این کتاب بنا بکنیم که این کتاب اینقدر خرابی داره این اصل مذهب روزهی سوال داره بحث من اینه که بفرد میبرم بحث رجال نیست بحث علمتنها نیست بله و حد در سر حسن ابن علی ابن ایفتین که ایزن قاله قلتو محمد ابن ایفتان از این که من خودم از عبدالعزیز شنیدم عبدالعزیز این بله این آقا آقای پسر حسن ابن هم حسن هم گفت در اینجا اینطوره اکاییونس ابن عبدالرحمن سه قطعا آفاده هم و ما احتاج من همه ما در این مطم سقتان آمده است. در مطم اول دقیق این بود. فمی من آخوا به ما عالم دینه. قال خود همینیسا مرده همان. خیلی دقیق رو کنه. مرحوم نایمی به این مطمی ای که سقتان خیلی تمستا کردن. سابقا هم توضیح دارد. یکی از احادیسی که خیلی مرحوم نایمی روش مانوب زدن در حجید خبر همینه سقتان. ایشون می کنند از تلمیه سقتان در میاد که حجید خبر بوده. و روشن شد که در اینجا در این مطن آمده اون متن اول نه باز مطن سه شماره شمال 25 جبرئیل بن احمد این اول سهل جبرئیل بن احمد آمد الان توبیه دادم نیم خواستم باید زبا کشی به خاطر هم جدی که نبود من اینجا این هم غلطه یا با ایاشی باشه یا باز رجب تو به خط جبرئیل بن احمد قال سمیعت و محمد نیسان عبدالعزیزم مهتدی این سر مشکل داره اینجا داره قول طول رضا این شغبتی بعیده فلسطا اصل و هلکی کلده فاخر معالم دینی ممیونوس مولا آلیقتین قاله نه حس به بعد در کتاب کشی آمده دو محلس سندر زعیفه توی سه برس ها نهاره. اون مدنی که سندش تنبیباً معتبره سه مدن آمده سه مدن دقیقاً آمده وقت عرض کردی مرمون آدی برداشتن این باق رو تارف بندی کردن دو سه تا حدیث اول اون تارفه ایسی توی شدقه آمده این حدیث اونجا را یه بوده در این تارفه اولن که از اسم افراده مثلا یونس اونو از و شاید شما فرض خارجی است این کارا جرافته الی خیلی خوبه اینا انصافا هر شما زری و داره تا احتمال میدم آقای در دو هفتهش ثروتون نیامده در یکیش اومده شوف الها در اغلب شده البته خیلی آورده و الا با اینطوری تایفه سری میوردن طرز شریعا مستفی شهید به رحمت الله علیه. ادخوبظ خیلی دقت کاره که این حدیث رو که سه تا حدیثه در کتاب مرحوم کشی تو تائفه اول میاره، تایفه که ما عسل به نظر تائفه 4 باشه، در تائفه شماره آن نگاه من دیگه قرار مشکره بنزنم تائفه تو تائفه 4م و من فکر می‌کنم ایشون ملاحظه عدد کردن، به لحاظ ادب اون بیشتر داره. اون دو تا دو تا درроде که سنه بشن ده. به هر حال بالا که اگر لحاظ صحت رو می‌کردن اون دو تایی که سنه ندارن صحیح نیستن. اینی که لوسترغاستون اخو داره سهت اما این سنه معتبره. به داد سنه این یکی بهتر از اون دو تا است. اما به لحاظ عدد اون دو تا بیشتره. الان که شماها یواشوش ما وارد جواب عزیز وباتان می‌شیم. اگه من جواب بدی این خاطره آخر ذنبایی آخر می‌کنه بعضی هم در کتاب بله کشف رو بیعرب ادبی حماده بن عبید الله به نظر من یکی از نوصرش ادی نصره مگر این منشاء شده که برادران فرید عبیدتی ما حماده بن عبید الله نسخه کشی کرده این یک کتابی هست رساله علیه مت نبی با جاهای کلیه چاپ شده خب مثل به زمان خودش واقعا خیلی زحمت کشیده انصافا حقا زحمت فراغانی کشیده در شرح حال من یوسر ما بعدی وسیر محرفت این رسال هست در این هم از رسالت العدیمت و نزیر این بوده ایشان که مکنن در عبیبسیر دمازده تا. خب، که مثلا آیه خولیس ستاش کردن یحیاس و ریس و اونی که چیه دلال میبخشیه در خب یکیش اینه که مشکل کار اینه که در دو نسخه نیامده ما بخواییم بگیریم سقتون بگیریم مشکل دوم کار که سابقا توضیح شده حالا بعدم ارضی میکنم این روابط ها درسته بنده میکنن این روابط که افراد نامباده شدن یکیش که در قسمت عرض محسنه حسنی حسنی ظاهرن مراده از سقیل یا مثلا ارجاع به این افراد مراد بخش رایی بودن اینها نیست خوب دقیق رو باید. مراد این که این ها اهل خبرن اشتهادشون صحیح هست خوب دقیق صحت اشتهاد حیل از متابقت باباقه این دستان خلق نکنی مثلا این پلان آقا مشهده فقیه جام و شرایطه اما ممکن ممکنه خلقات مصابقه باباقه نباشه گانی به این معنی سبتون به چه برینه به در این اینکه یک آقل و انها محال مدینی محال مدین رو به روایت غالباً نمیگن یعنی ایشون یک مردیس حقاردش، حسودش، درسته صحیح،, صحیح روی قوائد نه صحیح مطابقه با باقید این دوتا رو واقعی خلف نکنیم چون مثل یونوس نردرمان مستهمه به رعیه، به خیاسه وقتی میگه استفادمان یعنی ایشون در مساقه خود یونس خود زرانی خود زرانی در کتاب کلامی مبانی فاصله کلامی بیمهان اصفاد داده شده که خدا جسم هست اصلا نمصد اصلا اشوار بشه در آفاد این کتاب مثل هرمی علیستانی که کتاب به اسطلاح ملل و نحر شهرستانی ولی در کتابای دیگه شده زرانی و هشامی و هرمیونسی یه اصلا به خود یونس مذهبی نسی ما الان الحمدلله در حجات نجوشنی مزید اون ترسان تو اجاز شیخ خواهد یکی دو جاییشون داره همی محمد نیسان داره بغدادی یون یونسی یون زنیفان دارا مذهب تکری بوده که گفتن آلمیشون یونسیه اینه که از امام سوال میکنه آقابه همه عالم دینی یعنی این آقابه فکرش درست به مبانی مثلا حدیثیش، مبانی فقریش، مبانی کلامیش مبانی اص این اون چه که راجع به حدود مذهب شیعه میگه درسته ما میتوانیم برده درست این رد که به حدیق خبروارد نداره اصلا نیست که در عبدالعظیم حسنی گفتیم حالا من وقتی در شوق انتهاست من عرض بکنم خدمتون بعد در این جایی که سرقه آمده اصلا ناظر به وکالت ده. فس محله و, و حفه و فعنه سفر کن که اول حدیق بود چون در راهی میگن نه پس ماله و اتیم رو در وکیل میشه این حدیثی می که ما می‌نویسیم این حدیثیه‌خو خودش می‌ذی آیت میشه استاد بزنم پس ماله و اتیم او نه که ناینی خودش استاد بزنی کشین این یونسون همون سه باسونا آقا برهم آلمانی یکی اون هم از لحاظ مواردی نه تشریفی ما یاری احنا سه باسونا اونم اونجا گفیم سه باسونای یعنی نو کلاب الموسوبه به نو خیلی میگه محلیت ما در معاصر مورد نقل نیست شما مرا به کالند بده هایی که ببینید عالی داری وقتی یه حس معلم و عتیقه او عتیقه رو در خبر وارد نمیکنی ولی که توجه به شما زرف مثلا برآور بود کرد نمیگم حس معلم و او عتیقه رو میشنویم شما خودی جامو کاری نموجود ندارید از معلم و عتیقه ها اما داره چی؟ آخ و دهانه ها بعد از ثقه به این غلیه آخ و دهانه ها معالم. معالم چاشوه پس مرال اصف. یک مرال اصف وکالته. دیدونید همین حدیث و مران نایم گلا از دارد من موالی ما به تشریف یکی مایر و یعنی ها ثقه کنه. یکی دوگر همون تو لحش گفتم نایمی تو همین جشن حقه میکنه. خب ما یک نمافه. یکی ما درسته بعد امام فعلوی نو ارکو کسانی که محروف انان و نو بازه دو هم سر هم ما سر همونه میگیم و نوحمد رو گوی یاهو الهی ای اونو اسرار خود اون رو توسط که اونها به وکیل رو با هم اگر نایین برای یه حدیث رو بیا گذر پس تو ما احادیثی که داریم خوب درگه کنید این احادیستا اینجا؟ یه مقدارش مربوط به وکالته سر رفتی به بحث و خبر سبه نداریش یه مقدارش مربوط به این که ایشان و مبانی کلامی ایشان مبانی علمی ایشان تغییره این جایی داره آخوز و معالم دینی مثلا کیه زکره ابن آدم اینطور گفته لست و اصل و هم و معالم دینی تو ذکر ابن آدم رو معالم دین آماده امن آخوز و معالم دینی فقال من زكريا ابن ادم خلقميه المعمون على الدين در دنیا یعنی زکریا و ادم هر چیزی که به قواعد یه صحبت درست می‌کنه میشه به لازه دنیا تا احکام ولایی که اصلا درنده بوده میشه تغییر خوب بشه میشه بشه این حب طبیعت میشه و معمون عراقی احکامو به صورتی که وصول اینها تقریبا این جاهایی که خوب دقت بکنه اون جایی که کلمه معالین دین آمده. مراد حجیت خبر نیست به خاطر اینکه چیزی بدیه مراد از معالمدین مثلا روا فلان مثلا لحم العناب حرام این پیش معالمدین نمیگه ها صد صد امام علی مصطفی خب همین چیزی بود که روات حادثه نمی کردن اینا به اصطلاح مثلا مثل یونس ها متهم به رأی خب هر کس روایت میگه به یونس گوییم ما رأی ما رأی تو مامشی ما روابطی تو روابط در دنیاست در خانه گفته میکنی که میگه با یونس میگه که اون یه رشته خوددار دوکانش رو باز کرده افقایی فقاهی لباس اون لغتی نوشت. خونه بیم کنی لغتان بیشترن. بریم میری مکت ناز، نمیشه لباس میشه قلت داری؟ قول تو لغو حافظه. اون رأی و رأی تو اصلا ایشون متهم به رأی بوده. این میخواد سوال بکنه. آیا ایشان متقن به رأی اصلا اشارش امام نه؟ خود معالمنینی که اندیشوناست این اصلا رب به مسئله خبر وارد نداره استاد این بحث ترجمه الى رواته احادیث نا این بحث معالب نموده که مردم به اجازه دادن به وقتی وقتی رسید ترجمه چه راسته من اونجا یکی یکی پس اولی فر اینجا روشن شد چی میخواد عرض مجموعه این روایات سه تا اون سه تا یعنی به که دیروز شروع کردیم اینجا این تا صفحه یک یک مدل کلاس. دومال صحت اشتحاد و مبانی علمیه بعضیش را داره بایده همه رواها انمی فر بگن این ما داره این بعضیش ما داره بایده اینه که همه رو پشت سر همه این درست نیست بعضیش بله ما داره این مطلب اول مطلب دوم ما الان نمیدونیم دقیقا که مئیاری که امام ارجاع دادن چی بوده؟ مثلا جساقت بوده؟ ادالت بوده؟ جلالت قرم بوده؟ چون این اطرادشی که ارجاع دادن شده زنید و قبرم هستن بس الله و و محمد حسن.